بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازن احرابان نهایت بارشد پیامبر جبین در هم کشید و روگردانید. از اینکه نزد او نبینای آمد چی میدانی شاید او پاکی و تقوا پیشه کرد یا پندی میگرفت و آن پند با او سودمند واقع میشد اما کسی که بینی نیازی نشان داد تو سوی او رو می آوری و اگر پاکیزه نشود هم بر تو الزام وارد نمی شود اما کسی که نزد تو بیاید و بسوی تو بشتابد و او از خدا می ترسد پس تو از او روی بر می تابی نباید چنین شود این آیاتی پند دهنده است پس هر که بخواهد از آن پند گیرد در صحیفه های مکرمت اندوده دود والا مرتبه پاکیزه قرار دارد به دست نویسندگان گیرام قدر نیکوکاری کشته شود این انسان که چه چقدر ناسپاس است او را از چی آفرید؟ از نطفه یعنی قطره منی او را آفرید و به اندازه متناسب مشخص کرد سپس راه را برایش آسان گردانی، باز او را میراند و به قبر گذاشت و هرگاه بخواهد باز او را برمیانگیزد نه هرگز چیزی را که با او امر کرده بود به جا نیاورد پس انسان باید به با خوراک خود بنگرد بیگمان ما آب را به وفرت فرو ریختیم سپس زمین را به گونه خاصی شگفتیم و در آن دانههایی رویانیدیم انگور را و سبزیجات را زیتون را و خرما را باغهای با درختان غلور را و میوهها و علفچرها را برای بهریادی شما و مواشی شما سپس چون قیامت با مشخصه آواز گوشخراش خیش بیاید روزی که انسان از برادر خود بگریزد و از مادر خود و پدر خود و از زن خود و از اولاد خود هر یک ایشان در آن روز از خود حالتی دارد که او را از توجه دیگران بینیاز میگرداند در آن روز روی هایست تابنده و درخشان خندان و شادمان و در آن روز روی هایست غبارالود یا هی آنها را پوشانیده هم ایشانم کافران بدکار